پیش از اینت بیش از این اندیشه اوشاغ بود مهرورزی تو با ما شهره افاق بود یاد بادان با صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه حلقی شاق بود پیش از این که این سقف سبز و تاق میناو برکشند منظر چشم مرا، عبروی جانان تاغ بود از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم و به ما مشتاق بود حسن محرویان مجلس گرچه دل می برد و دین بحث ما در لطف تب و خوبی اخلاق بود بر بردر شاهم گدای نکتهی در کار کرد گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضاق بود رشته تسبیح اگر بکس هست معذورم به دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود در شب قدرر سبوهی کردم عیبم مکن سرخوش آمد یار و جامی بر کنار تاغ و. شعر حافظ در زمان آدم در باغ خولد دفتر نسین و گل را زینت اوراق بود